نوار شماره 24 د از نوارهای رادیو ایران شاعران قصه میگویند قسمت چهارم ویس و رامین تکثیر شده در استدیوی کتابخانه گویای سازمان ملی رفاه نابینایان ایران تهران به تاریخ دهم ده اسفند ماه 1355 شمسی تکثیر کنندگان مراد قرحقلی عبدالله قفاری شاعران قصه میگویند من در صورت هر قصه ای خرده بینان راز معنی حسه ای و رامین قسمت چهارم بخش از داستان دلانگیز ویس و رامین اثر فخردین اسعد گرگانی سخنسرای سرای نامی قرن پنجم هجری صاحب دلان را رهاوردی بس جان فضا آوردیم سخن بدانجا رسید که شهرو در برابر سیموزر بسیار دخترش ویس را به همسری شاه موبد که شهریاری سال خورده بود درآورد. اما رامین برادر شاه موبد را دل به دام مهر ویس افتاد و عاقبت با زاری ها که کرد و حیله ها که ندیمه ویس به انجام رسانید ویس و رامین به دیدار هم رسیدند و به شاد کامی پرداختند شاه موبد از این قصه آگهی یافت و بران شد که رامین را از میان بردارد اما با الهاه شهرو از این اندیشه بگذشت و پس از آن که ویس را نکوهش فراوان کرد به سوی مروش بازگردانید اکنون دنباله ماجرا تقدیم صاحب دلان می شود Thank <laughs> you. اگر بار به شهریار سپردند و او همراه شاه موبت به مرد رسید. شهریار ویس را سرزنش ها کرد و از او سوگند خواست که اگر به حقیقت با رامین پیبندی نداشته است در حضور موبدان و همه مردم شهر از روی آتش بگذرد و بر بیگناهی خود حجت آورد. ویس این سخن را پذیرفت و آنگاه شاه موبت فرمان داد تا آتشی بزرگ بیفروزند و ویس را بیازمایند چو در به گزین شد شاه شاهان دلش خورم به روی ماه ماهان به روی ویس بودی آفتابش زموی ویس بودی مشک نابش نشسته بود روزی با دلارام سخن گفت از هوای ویس بارام چه بنشستی به بوم ماه چندین ز اون که جفتت بود رامین اگر رامین نبودی قم گسارت نبودی نیم روز اونجا قرارت جوابش داد خورشید سمنبر مبر چندین گمان بد به منبر به عادت نیز رامین همچنین است مرورا دوستار راستین است به هم بودند هر دو چون برادر نشسته روز و شب بارود و ساغر چرا مین آمدند در کشور ما به رامش جفت ویرو بود چشما. نهر نه هر کو دوستی ورزید جایی به زیر دوستی بودش خطایی شنجه گفت نیک است ارچلین است دل رامین سزای آفرین است بدین پیمان توانی خورد سوگند کرامین را نبودش با تو پیدند جوابش داد ویس ماه پیکر بوت آزاد سر و یا سمنبر بر کرا ترسم زنا کرده تباهی به سوگندان نمایم بیگناهی شهنجه گفت از این بهتر چه باشد؟ به پاکی خود جز این در خور چه باشد؟ خورسو سوگند و از تهمت برستی روان را از ملامت ها بشستی کنون من آتشی روشن فروزم بر او بسیار مشک و عود سوزم تو آنجا پیش دینداران عالم بدان آتش بخور سوگند محکم هر انگاهی که تو سوگند خوردی روان را از گناه پاکیزه کردی؟ مرا با تو نباشد نیز گفتار نه پرخاش و نه پیکار و نه آزار مرو را گفت ویسه همچنین کن مرا و خیشدن را پاکدین کن زاتشگاه لختی آتش آورد به میدان آتشی چون کو بر کرد نبود آگاه در گیتی زن و مرد که شاهنشاه آن آتش کرا کرد چو از میدان برآمد آمد آتش شاه همی سود از بلندی سرش با ما ز بام کشک موبت ویس و رامین بدیدند آتشی یازان به پروین ز چندان مهتران یک تن ناگاه بدان آتش چه خواهد سوختن شاه همان گفیس در رامین نگه کرد. مرورو گفت بنگر حال این مرد که آتش چون بلند افروخت ما را بدین آتش بخواهد سوخت ما را بیا تا هر دو بکریزیم ازیدر بسوزانیم همو را به آزر مرا بفرید موبت دی به سوگند به شیرینی ها گفت چون قد مرا گوید که بر آتش گذر کن جهان را از تن پاکت خبر کن اگریز از مشاهده شعله‌های آتش قصد شاه موبد را دریافت. در حراس افتاد و رامین را گفت که این آتش را شهریار برای سوختن آنان برفروخت است. آنگاه به یاری ندیمه از کوشک به بیرون شتافتند و به سوی ری گریختند. در آنجا، در خانه بهروز که از یاران رامین بود به شادکامی روزگار گذرانده. رهی از گلخنن در بوستان بود چونان راهی چه از هر کس نهان بود بدان ره هرسن در باغ رفتند موبت با دلی پرداغ رفتند همانگه پیش مرد باغبان شد بیار آمید چون در بوستان شد بفرمودش که رو اسبان بیاور گزیده هرچان باشد تکاور ز زمربان در بیابان رفت چون باد ندیده روی او را آدمی زاب ز و کوی راگه نبودند تو گفتی هیچ شب در ره نبودند به چینندر به سنگی برنبشته است که دوزخ عاشقان را چون بهشت است به ده روزان بیابان را بریدند سه مرو شاه جان رسیدند به ریدر بود رامین را یکی دوست به گاه دوستی شایسته اوست به بهروزی به داده بخت کامش که خود بهروز شیرو بود نامش چون رامین را به دیدان مهر پرور نبودش دیده را دیدار باور بیار ویس جام خسروبانی در او می چون رخانت خانت ارغوانی بسا روزا که نام ما بخانند خردمندان شگفت از ما بمانند دلا بسیار درد و ریش دیدی کنون از دوست کام خیش دیدی دلی چون خیشتن دیدی پر از مهر و یا از گلروخی تابان تر از مهر darum <متحدث> وقتی ویس رامین پنهانی از مرو گریختند شاه موبد را تحییری عظیم پدید آمد نالان و پریشان گشت و سرانجام او رنگ پادشاهی برادرش زرد را سپرد و خود در جستجوی ویس به گرد جهان روان گشت چو از دیدار ویسه گشت نومید به چشمش تیره شد بنده خورشید. سپردش زرد را شاهی سراسر کم دستور بودش هم برادر گذید از هرچه چه او را بود تیغی تکاور چون تند میری. نشان وی سر جایی بپرسید نه خود دید و نه از کس نیز بشنید به کوه و بیشه و حامون و دریا همی شد پنج مه چون مرد شیدا. همی گفتی دریگا روزگارم سپاه و گنج و رخت بیشمارم هم از دل دور ماندستم هم از دوست به چون این روز مردن سخت نیکوست اگر روزی رو خانش باز بینم به دو بخشم همه گنج و نگینم چون ماهی پنج شش گرد جان گشت تنش یک سست و ناتوان گشت سوابان دید که از ره باز گردد هوای ویس شستن در نوردد امیدش گذارد زندگانی مگر روزی بیابد زندگانی همانگه سوی مرو شاه جان شد دیگربار جهان زو شادمان شد همه بازارها آین ببستند برای این رود سازان برنشستند چون رامین میدانست که مادر از دوری وی به آتش غم نشسته است نام اینه بشت و او را از نهانگاه خیش، که با ویست در اونجا به سر میبرد آگاه ساخت ذره رامین به مادر نامهای کرد ز شادی جان او را جامهای کرد فرستاده به مرو آمد نهانی شتابانتر ز باد مهرگانی همی تا شاه رفته بود و رامین همیشه اشک مادر بود خونین به نامه گفته بود ای نیک مادر مرا ببرید گیتی از برادر هم از ویس است آزرده هم از من همی جوید به ما بر کام دشمن مرا یک موی ویس ماه پیکر گرامی طرز چون او صد برادر مرا از ویس باری جز خوشی نیست از او جز برتری و سرکشی نیست به مروندر چنان بودم شب و روز که گفتی آقوام در پنجه یوز فرستادم به تو نامه نهانی بدان تا حال و کار من بدانی چون مادر نامه فرزند برخاند ز شادی دل نامه برفشاند یک چند گذشت و چون مادر در یافت که شاه موبد را از برادرش رامین کینه و آزاری در دل نیست گفت که نهانگاه او را می داند و از او سوگند خواست که اگر پیمان کند که ویسرامین را گرزندی نرساند آنان را به مرو باز خاند و شاه موبت سوگند یاد کرد چو یکی هفته بیاسود زتنهایی همیشه تنگ دل بود شبی مادر به دو گفت ای نیازی چرا از رنج و انده میگو دازی شنشه گفت ای مادر چنین است دلم گویی که هم با من بکین است اگر جانم زویس آگاه گشتی درازندوه من کوتاه گشتی پذیرفتم که گر رویش ببینم به دست اود هم تاج و نگینم به رامین نیز جز نیکی نخواهم برادر باشد و پشت و پناهم چو این گفتار از او بشنید مادر تو گویی در دلش افتاد آزر گرفتش دستان پرمای فرزند بخور گفتا بر این گفتار سوگند که خون فیس و رامینم نریزی نه هرگز نیز با ایشان ستیزی کجا من دارم آگاهی از ایشان بگویم چون ببندی راست پیمان چو مادر باشان چه این سخن گفت ز شادی روی او چون لالبش گفت همی گفت ای مرا با جان برابر مرا از دوزخ سوزان برآور بر به با مادرش سوگند به دین روشن و جان خرپمند که با رامین از این پس بد نجویم دل از آزار و کردارش بشویم شبستان مرا بارو بود ویس دل و جان مرا دارو بود ویس چو شاهنشه بدینسان خورد سوگند به کار ویس دل را کرد خرسند وقتی مادر به دنجا رسید و رامین از سوگند برادر آگهی یافت، ویس را برگرفت و به سوی مرو روی نهاد. پسانگه مادرش نامه فرستاد، به نامه کرد رفته یک به یک یاد. چه آمد پاسخ نامه به پایان، به بردندش به پشت باد پایان. دل رامین از آن نامه بتفسید، زهال مادر رو موبت بپرسید. چو از پیمان و سوگند آگه یافت اینان از به سوی مرد برتافت نشانده دلبرش را در اماری چو اندرتاج در شاهواری چو چشم شاه موبت بروی افتاد همه شغل جهان او را شد از یاد فراموش کرد آزار گذشته تو گفتی دیو موبت شد فرشته دیگر باره به رامش دست بردند، جهان را بازی و سخرش مردند. دیری بر نیامد که شاه موبد را از آمدن سپاه روم آگهی رسید. و او که جز نبر چاره این به بسیج سپاه پرداخت. اما پیش از ترک کردن مرب، از بهر که ویس و رامین دیدار نتوانند، رامین را با خود به کارزار رومیان برد و ویس را به دژ فرستاد و نگهبانی دژ را به برادرش زرد سپرد جهان را گوهر او آئین چونین با ام هران خود بکی show, show. که با همگوهران خود به چین است شبش با روز باشد ناز با رنج، بلا با خرمی بدخواه با گنج شانجه موبد از قیصر خبر یافت که قیصر دل زراه میر برتافت شنشه رای رایزد رفتن به پیکار ز باق و بر برکندن همه خوار که رامین را چگونه دوستدار است دلش با وی چگونه سازگار است به زمان من بگریخت یکبار مرا بیسبر و بیدل کرد و بییار اگر یک ره دگر چونان گریزد به تیغ هجر خون من بریزد چو باشد رام در ره ویس در بند نایابند هیچگونه روق پیوند آنگاه که شاه موبد ویس را محبوس ساخت و خود به کارزار رومیان رفت و رامین را نیز به همراه برد ویس گرفتار مهنتی جانکاه شد و تنها و بیکس در دژ به زاری نشست جاگه گشت ویس از رفتن رام به چشمش بام داد تیر چون شام فراقش زعفران بر ارغوان ریخت چو مجگانش گوهر بر که رو ریخت همین آلید بر تنهایی از جفت خروشان زار با دای همی گفت فدای عاشقی کردم جوانی فدای مهر جانان زندگانی غذا پیوند ما از هم ببرید جدایی پرده رازم بدرید نگارا تا تو بودی در بره من بنوشین خواب خوش بود بستر من چرا نشنیدم از تو هرچی گفتی چرا با تو نرفتم چون تو رفتی به حیله از میدان کارزار بازگشت به مرغ رفت و به ایوان ویس شتافت اما از ویست نشان نیافت آشفته و پژمان گشت و زاری ها کرد سرانجام جایگاه ویس باز یافت و بدانسان که زرد و دیگر نگهبانان در نیابند به درون دش رفت و با دلدار به شادی و ترن نشست چو رامین آمد از گرگان سوی مرف تویی بود باغ شادی از گل و سر